انشور بشره جميعه وانثور اغلى الورود والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شنوندایای گرامی به بخش در این برنامه رادیو صبا خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب داریم با دسته های امشب دیفو احلا نشی وتیفو احلا نشی شومای راه منور شد با ایمان با ایمان شومای راه شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم لشکری خلافت شومای راه منور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم لشگری خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیر پرچم حق وحدت خواهیم کرد ما همه هستیم لشگری خلافت ای بغدادی با تو بیعت خواهیم کرد خلافت را ما حمایت خواهیم کرد زیر پرچم حق وحدت خواهیم کرد ما همه هستیم لشگری خلافت شمع ای راه منور شد با ایمان از از فاسلوخت سن خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم زشکر اخترافت شام و ایران و شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت دلیران ما همه هستیم زشکر اخترافت خدا من را مظلومین کن تدبیری دشمنانت را بیران کن فتح و سرت نصیبی مومینان کن ما همه هستیم لشکل اخلافت سرزمین خراسان گشت قبرستان برای دشمنانی دین و ایمان گلگن هر صاحبا خونی شهیدان ما همه هستیم لشکل اخلافت شام و ایران منوور شد با ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت تو شهامت دیدیロン ما همه هستیم زشکر خدافت چو پای رب من اول شبام ایمان از فضل و احسان خدای سبحان از غیرت و شهامت ایران ما همه هستیم زشکر خلافت آمریکا از خلافت گشپوره ایشان قوانین دموکراسی شد و ایران مسلمانانی ای عالم گشتن خندان ما همه هستیم زشکر خلافت خلافت بر مسلمانان مبارک فتوحاتی سلاح شوران مبارک تطبیق احکام قرآن مبارک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 ما هرگز مرتدین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دالر اینا چیزی آمریکایی ایمان ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دهیم که آنچی را که قایم کرده ایم سقوط دهند یا آنچی را که بنا کرده منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان می برید ما از بین می رویم آیا خیال می کنید که ما نابود میشویم نه والله. تا قیام قیامت ماندگار ما خواهیم بود ماندگار خواهیم بود زیرا که به الله واحد خوزو نموده ایم در حالی که دشمنان ما به امریکا خوزو نمودهاند اند. ماندگار خواهیم بود چون ما به خاطر کدام هدف دنیوی نیامده ایم بلکه تنها برای ایلای کلمت الله آمدیم ماندگار خواهیم بود زیرا که احوال ما با جنگ شدید ترو با ترک گسترش می یابد و عزت مخصوصی الله و رسولش و مؤمنان است. طاغوت, شناسي. طاغوت شناسي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم و ایک تاریخ مشهور است که تاغوت او را عبادت کردن می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت میگن. تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و مطابعت و کسی که داو میکنه که و تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبان توغوتو دوست داشته باشد یا زبانان تاغوت توغوتو تعریف میکرد باشد یا همان از توغوت اطاعت میکرد باشد یا از این نواقض کلمه از ندای نواقض ایمان است این برنامه را دوشنبه شب ها و چهارشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید منهج تا من حج، فکری، سیاسی، نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل فرقه های بسیار زیاد بین امارت و خلافت وجود دارد. امارت به عنوان یک تشکل قومی و به عنوان یک تشکل سیاسی با رنگ دینی قد علم کرد و نقطای را گذاشت که ما علی کفار مرتدین مبارزه میکنیم دین الله را تطبیق میکنیم ولی عمل ثابت ساخت که اینا محض ادعا داشتند این برنامه را یک شمب شب ها و سه شمب شب ها از رادیو صدق خلافت فراموش نکنید شنونده های مومن و مسلمان رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با امید ای که جور و صحتمند باشید و در برنامه منهج تا منهج ما را همراهی کنید استاد در مباحث گذشته پیرامون موضوعات مختلف بحث نمودید و در خلال بحث ها بینی مادی را هم معرفی کردید و گفتید که جهان بینی مادی در جهان بینی معاصر در دو مسلک و شیوه نظامداری مورد اجرا قرار گرفته است و میگردد. میشود کم معلومات در پیوند با این دو نظامداری مادی برای شنوانده ها معلومات را بدهید. الحمد لله وحده و الصلاة على من لا نبي بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و لی امری وحلل اقدت من لساني یفقه قولي وقال تعالی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و ردیتو لکم الاسلام دینه اما با تشکر از این که ما را وقت دادین در دا گفتشونالهای خود را پیرامون موضوعات مختلف در برنامه شما داشته باشیم در مباحث گذشته پیرامون بینی اسلامی های خود را داشتیم و گفتیم که جهان بینی اسلامی روی یک هدف و یک مشخص یعنی وجود آمده و جهان خالق داره و نسبت به انسان هم گفتیم که انسان شادی نیست همان قسمه که مکاتب غیر از اسلام به این نظر بود و گفتیم که انسان الله سبحانه و تعالی مکرم و در بهترین پیکر و رخسار خلق کرده و گفتیم که جهان خانه آزمایش است و انسان در جهان مکلف به اوامر الله سبحانه وتعالی تا نتایجش در آخرت بگیره و بیرام گفتیم که زندگی دنیا تشبیه به بازیچه شده و زندگی آخرت یک زندگی حقیقی و دوامدار و یک زندگی که آسایش و آرامشش از تصور انسانی بالا است و در پیوان به نظام سیاسی هم گفتیم که نظام سیاسی برخلاف نظام مادی یا شیوه های نظام نظام داری که بشر ایجادگر از خود بشر میهور قانونگزاری نیست باید که الله سبحانه و تعالی که ثابت است و محکم است توسط انبیا بیان داشته و انسان مکلف است تا در نظام سیاسی هم امی قوانین چی کنه تطبیق کنه و در نظام اقتصادی هم محدوده های ذکر کردیم و نظام اجتماعی را هم گفتیم که نظام اجتماعی در اسلام بر اصل تعاون و از خودگذری و همکاری و همدردی بنا شده و کلاً مسائل اخلاقی هم دی رعایت شده از مسائل جزئی گرفتن تا مسائل کلی و هم گفتیم که وتعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان که اصل در نظام اجتماعی است که مسلمان در کار نیک با مسلمان دیگر همکاری و تعاون کند و از کارهای بدچی کنه اجتناب کنه. حال این سوال را که متوجه بنده ساخته مربوط به دو شیوه نظامداری و دو مسلک می شود که در جهان معاصر به ویژه در افغانستان و در خراسان و کشورهای همجوار ما را لمس کردیم و حالم دارد مورد اجرا قرار میگیرد توسط همین کفار یکی از این نظامها نظام, نظام کپیتلیزم یا نظام راسمالیزم یا نظام سرمایهداری یا نظام فیودالیسم هستن این نظام جونین هست که نظام تعریفش چنین است که نظام سرمایهداری هم یک شیوه از نظام و نظامداری است که بر توصیه و گسترش مالکیت فردی و محافظت از آن چیست استوار است. و کلن به آزادی فرد اعتقاد و دارد. این نظام توسط یکی از فرانسوی ها که در دربار طبیب بود برا انداخته شد که بعدا از طب به اقتصاد رو آورد و مذهب طبیی را به وجود آورد و هدف و مقصد و رسالت این نظام هم در کل این است تا تفکر روحانی یعنی مذهب و دینداری از جامعه از جامعه بشری چی شود؟ ریشکن شود و لاک هم یکی از کسانی است که به این نظام معتقد است و آزادی فرد را یک اصل می پندارد و میگه که ملکیت فردی یعنی که فرد به کمال اقتصادی برسد یک غریزه ای را میپندارد و میگه که به هیچ کس اجازه نیست تا در برابر این غریزه چی کنه؟ استادگی کنه و نسبت به افکار این مسلک باید یادآور شویم که در این مسلک هم مسایل هستک که قابل یادآوری است یکی از مسائلی که بسیار سر از بحث و مباحثه صورت میگیره این است که انسان جستجوی فایده به طریقی که لازم باشد و ما در مباحث گذشته گفتیم که در این نظام کدام معیار وجود ندارد میبینیم امروز همی که از طرف سازمانهای های نسبت به تمباکو، نسبت به چرس و مواد مخدر و شراب داده میشه که اینقدر قدر اینقدر و قدر مسائل نسبت به انسان متوجه میسازد ولی باز هم میبینیم که به پیمانی بسیار کلان امین نظام ها که اینمی اعلانات و شعار و میده در پالوش اینمی چرس و اینمی پوردر و اینمی سگرت چیزش عام و چیزش غیر مستقیم چیزش مستقیم عرضه میکنه و بیادر به شکل از اشکال سجوی میکنه و این یک اصل است در حال که برخلاف این نظام در اسلام هم بر مالکیت فردی محدوده های خود وجود داره که یک فرد در چوکات حلال و حرام باید رزق کمایی کنه در چوقات مزر بودن و غیر مزر بودن یعنی یک معیار وجود داره که یک چیز, یک چیز را تو تولید میکنی وارد میکنی باید مخالف موازین شرعی و مخالف موازین اسلامی و شریعت نباشه بعد از اون تو تولید کرده میتانی خود در کل در این نظام این اصل به عنوان یک مسئله مهم پنداشتن نمیشه سوجوی از هر لای که لازم باشد. و ما میبینیم مثال های می کشورهای و پاکستان و افغانستان و کش زیاد دوم در افکار این نظام یا مسلک احترام به مالکیت فردی است که گفتیم که یک فرد به کمال اقتصادی برسه و در ملاحظاتی که نسبت به این شیوه میشه که اینا نظام را مکلف میکنند تا از اینمی فرد که میخواهد به کمال اقتصادی برسه چیکنه؟ محافظت کنه و ما در افغانستان و پاکستان و هندوستان می بینیم که در یک بخش اعظمې از کشور یک تعداد مردم تا یک میلیون دالر هم صرف جور کردن یک می کنند و خوب با کر و فش و آسایش و آرامش زندگی می کنند ولی در جانب دیگه یک تعداد مردم به یک مقدار غذایی که ضرورت داره نیازمند میباشه و در افغانستان معمول دیدیم که در شیرپور اگر به یک مثال پیش کنیم هم یک طور خانه که یک میلیون دلار سر از صرف شده و در جانب دیگه میبینیم که مردم زیر خیمه ها زندگی میکنن، آزوخ ندارن و مواد سوخت ندارن مواد خوراکی ندارن حتی تعلیم خوب به اونا رسیده نمیشه و میبینیم که در مو زیر خیمهها ها به اثر خنک یک تعداد مردم جا حتی در هندوستان که شما برین مشاهده کنید یک تعداد مردم در سرک به دنیا مین در سرک تولید نسل میکنن در سرک زندگی میکنن و در سرک غذا میخورن و در سرک کلا نیه یعنی کتاب در سرک باز میشه و در سرک ختم میشه و در جانب دیگر میبینیم که یک مردم سرمایه دار است ولی چون اصل نظام بر این استوار است که یک نفر به مالکیت فردی برسه و که مردم به زیر پایش سوم مساله همچشمیچ در بازارها که هم یک چیز هسته که ما در بازار میبینیم که یک تجار یک چیز را وارد میکنه برخلاف از او یک تجار دیگه باز میخیز یک چیز دیگر را وارد میکنه تا یک نه سبقت و پیشی گرفتن در مسائل تولید و مسائل عرضه و مسائل فروش و مسائل وارد وجود داشته باشه مسئله چارم ده ای آزادی نرخ هست که چار نفر تجار جمع میشه سر یک چیز نرخ مگذاره <متحد> ولی نظام نه نظام جلو و زور گرفته میتونه و نه مردم صد که مردم بخیزن احتجاج کنند تظاهرات کنند کسی به صدای از او پاسخ نمیداد و ما در مسئله گذشته هم گفتیم که یک کیلو گاز اگر به پانزده رپه پا یا بیس از کشورهای امسایه وارد افغانستان میشه خو نهایت 5 رپه کرا و پین رپه پی مفادش یعنی روپه ولی میبینیم که روپه گازه که با مفادش در نفس کابل میرسه به 60 روپه به پنج رو در سرمای زمستان ارزه میشه ولی وقتی که مردم و رسانه‌های جمعی و وابسته و اینمی نظام فاسد صدای خودا بلند میکنه با صدای از او کسی پاسخ نمیدهد و مسئله پنجم نظام کارتل است یعنی توافق شرکت‌های بزرگ به خاطر تقسیم بازارهای جهانی به خاطر احتکار که احتکار یک اصل خطرناک منافع با اخلاق اقتصادی در اسلام است که رسول الله ص که احتکار میکنه از ما نیستک. احتکار به این معنا که در بازار مواد یک نفر میاد جمع میکنه و ورا گدام میکنه وقتی که به با بازار دوباره مواد قیمت شد بس به با بازار ارزه میکنه و این هم یعنی نظام کارتل یعنی توافق شرکت های بزرگ به خاطر تقسیم بازارهای جهانی ای را میکنه که در این نظام به عنوان یک اصل گرفته میشه و ما مثال های زنده در افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها هم میبینیم مساله ششم نظام ترست است یا ترست سیستم که تقویت بعضی از شرکت های بزرگ یه هم یک اصل است در این نظام و مسئله افتوم نظام زندگی اقتصادی زیر نظام طبیعی همان قسم که معسیس ازی نظام طبیعی را به وجود آورده و انسان فرد آزاد مطلق میدانه و بعضی که پای را کرده که کلا در جامعه اخلاق نباشه و مذهب و دینداری و معیارهای انسانی که الله سبحانه وتعالی بخاطر رسالتمندی انسان میخواه باید نباشه مثل دولت نباید در زندگی اقتصادی تصرف کنه بلکه وظیفه دولت را حفاظت و امنیت آزادی اقتصادی برای هر فرد میدانند که یعنی دولت مکلف است تا از همین فرد به شکل از اشکال و به نحوی از آنها محافظت کنه تا این فرد به کمال اقتصادی برس اولاو که چقدر جنایت می کند در حالی که برخلاف این مفاهم نظام نظامداری در مفاهم شرعی همین است که فرد باید سر فرد ظلم نشه و نظام در شوکات و فرانسیب و دسپلین و اسلامی پیش برن مسئله دهم ده که قبلا ذکر کردیم مسئله آزادی اقتصادی برای هر فرد است و مسئله یازدهم که یکی از مسائل بسیار خطرناک است با این بودن مز و درخواست کار زیاد و مزدور آزادی تجارتی و بیکاری در جامعه ما می‌بینیم که یک تعداد مردمه که بی سواد خونه خود نامزدوری میکنه ولی یک تعداد مردمی که از ها با مدارک لیسانس و ماستری و دکترا در اینمی کشورهای همسایه و زیر اینمی نظام شیوه نظام نظامداری بیکار و بیکار حتی در هندستان که برین بخش اعظم از ریکشاها و تکسیها را مردمای می‌چلانند که مصروف کار هستند در تاکسی و ریکشا که لیسانس ماستر هستند ولی در افغانستان هم ما مشاهده کردیم که یک بخش خوب به اوج ترقی اقتصادی رسه و بخش دیگه با دیپلوم و اثناد که از پهنتونهای کابل و پهنتونهای شخصی دارن یا از پهنتونهای بیرون دارن بیکار و بیروزگار می و استعمار هست که در نخست استعمار اقتصادی هست که بهرکشی پولی استک و بعد استعمار سیاسی و فکری هم مثالای زنده ما مادر افغانستان و, و یکی از مسائل بسیار خطرناک در مقابله با اسلام است یه است که این نظام با سود استواره یک چیز است که منافع با اخلاق اسلامی است جنگ با الله و رسول است که معمولا نمی بانگهای خرد و ریزه در افغانستان بخش اعظمی از مردم افغانستان با ویژه مردمه که در کابل زندگی میکنه به سود و ربا و به چیزهایی که الله سبحانه وتعالی اه. نسبت به حرمتش حیات مستقل راون کرده و سخت قباهت و سخت بدی ازی عمل بیان کرده <تصفيق> و چهارم مساله این مفکوره تا بعض اوقات بانداختن هم اموال و مواد در بحر و سختاندن هم امر میکنه و تولید آن اشی که اصلا با آن ضرورت نی و این نظام با تمام افکار اخلاقی مبارزه میکنه و در کشورهای مثل جاپان و آلمان و ایالات متحده امریکا و اکثر دولت غربی نفوذ کرده و مورد اجرا و مورد تطبیق عمو فکر و اندیشه و نظام خود مسروف کارد استاد در خلال بحث گفتید که در این نظام اصل تفکیک در کسب مال وجود ندارد و هم اشاره کردید که مواد مخدر و غیره در این نظام ها هم تولید می شود و هم فروخته می شود در حالی که ما از رسانه های اینها مشنایم که اینها در برابر مواد مخدر مبارزه می کنند الله خیرن در این شک وجود ندارد که در خلال بحث ما گفتیم که معیار خاطر تولید و کسب مال وجود ندارد و ای این یک چیز ثابت استک و چون سوال را که متوجه ساخته متوجه مواد مخدر ضرور نیست که مواد مخدر همیشه افیم و بودر و ای چیزا باشه خود نفس سگریت و نفس شراب و نفس نسوار و نفس امیگبایی که به انسان نشه میاره تماما در امین مفاهم مواد و مخدر داخل میشه یکی از برادرها در یکی از مؤسسات استخباراتی کار میکرد که بعدها باستوبه کرد از اونجا بیرون شدو می میکرد که نفس کابل دو بخش دارد یک بخشش بخش عام زندگی است که مردم است و کار است و روزگار است و شکایت است و کلگی کلن مصروف است بخش دیگر یعنی چهره دیگر کابل که ای این چهره استخباراتی است که حتی یورانیم غنی شده در بازارهای کابل در پشت پرده ها چی میشه؟ معامله میشه و او در خلال امی خود میگفت که خوبترین مواد مخدر در افغانستان چی میشه تهیه میشه جور میشه پروسش میشه توسط همین امریکایی ها به بازار جهانی چی میگه این اینها ادامه میکنن که در این نظام ما بر علیه مواد مخدر مبارزه میکنیم کلا دروغ میگن چون عملا مادی که بیشترین بخش عظم از مواد مخدر امروز همین هاجیزاهر بدبخت که یک تعداد مردمی را که از اینجا لشکر کرده بودن در مقابل دولت اسلام و از اینجا بیرون شدند الان در ساحات مختلف جلالباد مستقر هستند و آجیزاهر اینا رو رهبری میکنند و اینا عرکت ایجاد میکنند یک برادر قسم میکنند که آجیزاهر کدام رهبر ملی نیست که کدام عقیده و کدام برنامه و کدام رسالت داشته باشه یک ایاش و یک انسان ویلگرد و یک انسان فرمایه و پست است که نه نظر داره نه فکر داره نه تصور داره هدفش در, در دنیا سجوی و ارزای است. چون چرا از اینها سرپرستی میکنند و خدا به عنوان یک رهبر ملی معرفی چون بخش اعظم از کارخانه های مواد مخدر که در آچین و در امین مامند تهیه شد در امیکوها کارخانگاش سرپرستیش امین عی ظاهر کرد چون بخش اعظم از تجارت مواد مخدر که بیشتر سود متوجهی رو روان هم میامد این متوقف شده توسط دولت اسلام و بیشتر پافشاری سرزمینی میکنه لشکر میکنه تا مردم دوباره به صرف خانه هایشان ساق بده و ما هم دینیم که آمریکایی ها خودشان بهترین مواد مخدر تهییمه که این که بخش اعظم از پول های خود در رسانه های جمعی اختصاص این داده که ما علی مواد مخدر مبارزه میکنیم و بعض از تصاویر و از ویدوها و از نوارها را هم تقدیم رسانه ها کردند که عمل نمی پلیس ملاوس و مرتد و عجیر و غلام دارن مصروف هستن زمینای های ککنا را چی بکنه کلان دروغ است. یعنی ظاهرن اینا چون جامعه افغانی یک جامعه سنتیست با همین مسائل مردم زود اساسیت نشان میتن ظاهرا برشان تصویر جرم مثل همین انتخابات که در گذشته صورت گرفت یعنی در کل کسانه که به رهبر و به اینوان کسانه که سر و سامان باید بدهن نظام افغانستان هست. در رأس قدرت توسط امریکا تعیین شده بود، ولی انتخابات یک تصویر کازو بود که برای این مردم. بدر حتی مردم غفغونه کنت وقتی که داد از نظام مردمی و نظام دموکراسی میزنه باید مزاقای عملیش بر ما چی کنین تقدیم کنین مواد مخدر هم شبیه امی نظام دموکراسی و نظام مردمداری که یعنی امریکا در افغانستان اومده و به نظام مردمی وفادار پابند و متحد است و عملا مساقات ش بر بده مواد مخدر هم اینا در رسانه های جمعی و حتی یک وزارت مواد مخدر است که کلا اگر ببینه او برادر قسمی که که تعداد کثیر از مجاهدین پیشین رهبران نامنهاد مجاهدین پیشین مثل سیاف ربانی و عطا محمد نور که اینا به بسیار پیمانی کلان در اینمی زیر از اینمی نظام که اصل تفکیق وجود نداره به خاطر سوجوی و جلب مال بخش اعظم از مواد مخدر توسط این امیکلاناو و کلای پارلمان و رجاله سیاسی نمی نظام فاسد و مرتج میشه از یک ملک به دیگر ملک زمین سازی میشه و انتقال میشه تا بیشتر و بیشتر در زیر از این نظام به مالکیت فردی خود اینها برسانند وجزاك الله خیر شنونده های گرامی شنیدید که نظام kapitalizm یک نظامی است که فقط به خاطر فری به مردم عام ایجاد شده اه, تایی که خود به درجه اعلای سرمایهداری برسانند و, و دیگه مردمان را زیر پای بکنند و شما هم مشاهده میکنین از رسانه ها که محض یک تصویره برای شما نشان میتن و میگه که ما مواد مخدر از بین بردیم در حالی که در بازارها مواد مخدر عام فروخته میشه و تمام شهرها را شما مشاهده میکنین که معتادین به حد زیاد رسیده و انشاءالله در افتی آینده بالای نظام کمونیسم باز هم بحث خواهیم کرد و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه اینده که باز هم در خدمت شما قرار میگریم شما را به الله عزوجل وجل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گلهای خراسان آیا شما میخواهد که رادیو صدای خلافت را از بر ببرید؟ برنامه فکری، تعلیمی و تربیوی بچه با که دختارا که سطری میکنه خلاف اسلام است. میتونی برای من بگی که کدام کدام دعاها یاد داری؟ دعای ننخوردن، دعای از دعای خو کردن. اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافتند. پیام برزو است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند. بله، بله، اینها گلهای خراسانند.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 دل گفته های اطفال خراسان دو شمب شبها از رادیو صدای خلافت